بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بیاندازه میخربان نهایت با با برکت است آنکه فرقان را بر خود نازل کرده است تا برای جهانیان خوشداری باشد ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست فرزندی نگرفته است و او را در پادشاهی شریکی نیست و هر چیز را آفرید و آن را دقیقا اندازهگیری کرد مشکان چیزهای دیگری را به جز او معبود گرفتند چیزهایی را که نمی توانند موجودی را بیافرینند بلکه خودشان آفریده شدهاند. و آنها که مالک زرر و نفع حتی برای خیشتن نیستند و نه مالک مرگند، نه مالک زندگانی و نه هم مالک رساخیست کافران گفتند این قرآن نیست مگر دروغی که محمد آن را افتراء کرده و گروه دیگر او را در این کار مدد نبوده اند. بگمان ایشان با این سخنی خیش ظلم و دروغی را مرتکب شده. و باز گفتند قرآن افسانه های پیشینیان است که وی آن را بازنویست کرده است و به وای صبح <تصفح> و شام خوانده می شود. بگو قرآن را کسی نازل کرده که اسرار آسمانها و زمین را می داند حقا که او آمرزنده و مهربان است و گفتند چی طور است که این پیانبر غزا می خورد و در بازارها را می رود؟ چرا با او فرشتهی فرستاده داده نشده است تا با او یک جا مردم حوش دارده یا چرا خزانهی در اختیار وی گذاشته نشده است یا چرا با وی بارستانی داده نشده تا از آن بخورد ستمگاران گفتند شما پیروی نمی کنید جز مردی جادو شده ای ببین ایشان برای تو چه نسالهای زدند ایشان گمراه شدند و از این رو توان رهیادی را ندارد با برکت است آنکه اگر بخواهد چیزهای بهتر از این را از آن تو میگرداند. باقستانهای را که در زیر درختان آنها جویبارهای جلیان دارد و نیز قصرهای را از آن تو میگرداند. بلکه حقیقت این است که کافران از قیامت انکار ورزیده و برای کسی که قیامت را تکذیب کرد آتش سوزان محیا کرده. انگامی که دوزخ آنها را از جای دل ببیند جوشش و دم در کشیدن آن را میشنوند. و چون زنجیر پیش در تنهای از آن انداخته شوند در این حالت است که مرگ می به با ایشان گفته می شود امروز تنها یک بار مرگ نخواهید بلکه بار بار برای خیشتن مرگ می خواهید. بگو آیا این بهتر است یا بهشت هشت جاودانی که به پرهیزگاران وعده شدن جنت برای ایشان پاداش و جای بازگشت است و ایشان در آن هرچی بخواهند فراهم می شود و در آن جاودانه می گوشن. این وعده است که پروردگارت ایفای آن را و آهده گرفته است و روزی را بیادار که پروان ایشان و چیزهایی را که جز وی می پرستند جمع می کند و می آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان گمراه شدند می گویند پاکی تو برای ما شایستن نبود که جز تو هیچ دوستی از دوستان را برگزینی ولی تو ایشان و پدرانشان را از نعمتها بهرور ساختی تا از یاد تو غافل شدن و ایشان قوم تباه شدنی بودن خداوند می گوید من این معبودان شما و شما را در آنچه می گوید تکذیب کردند پس بازگشتن نمی توانید و نه هم پیروزی حاصل کرده می توانید هرکی از شما که ستمدار است، به او عذاب بزرگی میچه و پیش از تو نیز هیچ کس از پیانبران را نفرستادیم مگر اینکه ایشان غذا خوردند و در بازارها آمد و شد کردن و ما بعضی شما را برای بعضی وسیله آزمایش قرار دادیم تا دیده شود که آیا صبر و شکیبایی میورزن و پروردیگارت بینا است. و آنانی که به دیدار ما در روز که آمد امیدی ندارند می چرا برای ما فرشتگان فرستاده نشدند یا چرا پروردگار خیش را نمی بینیم، ایشان واکن خود را بزرگ داشتن یعنی با خود مغرور شدند تکبر و و سرکشی بزرگی را مرتکب شدند روزی که فرشتگان را ببینند بی در آن روز این دیدار برای گناهکاران مجده نخواهد بود و می گویند ما را امان دهی. برگشت برگشتناپذیر و به هر آنچه در زندگی خیش انجام دادند رو آوردیم و آن مانند زرع های غباری که در هوا تیت شود پراگنده ساختیم اهل بهشت در آن روز از بهترین قرارگاه و بهترین رهایشگاه بر است و روزی که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان به گونه منظم فرو فستاده شود پاچه در این روز از آن خدای رحمان است و آن روز بر کافران واقعی دشوار است روزی که آدم ستمگار دست خود را میگزد و میگوید ای کاش من با رسول راهی را وا وایلا ای کاش من هرگز فلانی را دوست نمیگیردم بگمان مرا از یاد رحم های خدا بعد از اینکه به سراغ من آمده بود گمراه سات و شیطان هم وارد دهنده انسان است پیامبر گفت ای پروردگار من بگمان قوم من این قرآن را به کنار گذاشتند و بدین گونه برای هر پیانبری دشمنی از میان مجرمان قرار دادید و برای تو پروردگارت به حیث رهنما و مددگار کافی است کافران گفتند چرا قرآن رو او به با یک بارگی نازل نشد این چنین نازل شده است تا با آن دل تو را استوار گردانیم و ما آن را برای تو به گونه مرتب و منظم نازل گردانیم هیچ مثالی را برای تو نمی آورند مگر اینکه ما به جواب آن حق و بهترین تفسیر را به تو نازل می کنیم که به روی خیش و دوزخ گرد آورده می شوند هم ایشانند که بهترین موقف و دورترین موقعیت را از راه راست و بیگمان و موسیٰ کتابی را دادیم و همراهش برادر او هارون را به حیث وزیر گردانیدیم و گفتیم به سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردن بروید و ایشان را به گونه تباه سختیم و قوم نوح هنگامی که پیامران را تکذیب کردن ایشان را غرق ساختید و ایشان را برای مردم مایه حدوت گردانی و برای ستمگاران عذاب در ناک آماده کردیم و همچنان عاد ثمود و اصحاب الرس و بسا اقوام دیگر را که در این میان بودند و برای هر یک ما مثالها زدیم و چون به آن توجهی نکردند همه ایشان را به گونهای هلاک گردانیدیم و حتما آنها از کنار شهری که بر آن باران شومی باریده بود گذشتند آیا آن را نمیدیدند بلکه زنده شدنی بعد از مرگ را توقع نداشتند و چون تو را بیبینند جد بر تمسخور نمیگیرند و می آیا این همان کسی است که خدا او را پیامبر برک است بیگمان نزدیک بود که ما را از پرستش خدایان ما گمراه سازد اگر بر آن استقامت نمی کردیم مگر چون عذاب را بیبینند بیدرک می فهمند که چه کسی گمراه تر است آیا آن کسی را دیدی که هوای نفس خیش را معبود خیش گرفت؟ آیا تو می توانی که زمین راهیابی او شدی؟ یا می که بیشتر ایشان می شنوند و میفهمند؟ ایشان نیستند مگر مانند چارپایان بلکه ایشان از آنها هم از جهت راهیابی گمراه آیا ندیدی فروردگارت چیگونه سایه را گسترده است؟ و اگر میخواست آن را ساکن میگردانی سپس آفتاب را دلیل وجود آن قرار دادی سپس آن را آهسته آهسته سوی خود جمع کردی و اوست که شب را به بشمال باس گردانی و خواب را مایه آرامش و روز را وسیله فعالیت و زندگی و اوست که بادها را به حیث ای در پیش و پیش رحمت خود فرستاد. و آب پاک کننده را از آسمان فرود آوردیم تا با آن سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به چار و مردم بسیاری که آفریده ایم بینوشانیم بیگمان آب و نیمت های دیگر را در بینشان و شکل گوناگون تقسیم نمودیم تا پند گیرند ولی بیشتر مردم از هر حالت جز ناسفاسی افاورسیدند اگر می خواستیم در هر دیار بیندهنده ای می فرستانیم از کافران اطاعت مکن و با ایشان به وسیله این قرآآن جهاد بزرگ و همه را بهراه انداز و اوست که دو دریا را کنار هم جایی گردانید یکی گوارا و خوشتان و دیگری شور و تلخ و در میان آن ها برزخی قرار داد حایل غیر قابل نفوذی و اوست که بشر را از آب آفری سپس برای او نصب و شاوند افتراد داد و پروردگارت به هر چیز تواناست ایشان جد خداوند چیزهای را می پرستند که برای شان سود و زیانی نمی رساند و برخی دیگر از افراد کافر در برابر پروردگار خود پشتیبان برخی دیگر است. و تو را نفرستاده مگر مجدد هندو بگو من در این امر از شما مزدی نمی خواهم جز اینکه هر که بیخواهد به سوی پروردگار خود راهی را برگزیند به ذات توکلنما که زنده است و هرگز نمی میرد و صفات ستوده او را به پاکی یاد کن و کافیست که خداوند به گناه بندگان خود آگاه می باشد اوست که و زمین و آنچهرا که در میان آنهاست در شش روز آفری سپس بر عرش مستوی شد او رحمان است، پس در مورد او از شخص آگاهی بپرس و چون به ایشان گفته شود و خدای رحمان سجده کنید میگویند رحمان چیست آیا ما به چیزی سجده کنیم که تو به ما حمر میکنی و این روش جز آنکه که به نفرتشان به حاصل ندارد با برکت است ذاتی که در آسمان برج های آفری و در آن چراغ و ماهی مبخش اوست که شب و روز را جانشین دیگر گردانی برای کسی که بخواهد پنگیرد یا بخواهد سپاس گذارد بندگان خدای رحمان کسانی اند که بر زمین با تواضع و آرامش راه می روند و هنگامی که نادانان ایشان را خطاب می کنند می گویند سلام آنانی که به حضور پروردگار خود به سجده و قیان شب می‌کنند. می کند. آنهایی که می گویند ای فروردگار ما از ما عذاب دوزخ را باز دار بیگو آن شدید دو دایی نیست واقعا که این قرارگاه و است. آنهایی که با خداون معبود دیگری را نیایش نمیکنند و انسانی را که خداون قتل او را شرام ساخته است جز به حق نمی و زنو نمیکنند و کسی که چنین کنند جزای آن را میبیند. عذاب برای او در روز قیامت دو چندان می شود و او در آنجا خالی و برای همیشه می کند مگر کسی که توبه کند ایمان آرد و عمل صالح انجام دهند چنین مردم اند که خداوند بیشان را پر تبدیل می کند و خداوند بخشاینده و مهربان است و هر کسی که توبه کند و عمل نیکو انجام دهند پس اوست که واقعا خداوند و تور پسندیده رو می آورد آنانی که گواهی ناحق نمی دهند و به کار باطل حاضر نمی شوند و چون با لاغ و کار بیهوده برخورند از آن برویش بزرگوارانه در می گذرند و آنانی که چون به آیات فروردگار خیش داده شوند بر آن کر و کور نمی این پندها را نادیده نمی و آنانی که می گویند پروردگار ما از همسران ما و فرزندان ما برای ما نوچشمان ارزانی کن و ما را برای پرهیزگاران پیشواس هم ایشان که با جزای آن که سر کردن به هشت برین را صاحب می و در آنجا ایشان با تحیات و سلام روبرو می و در آنجا جودانه و سر می برند و چی فرارگاه و اقامت گاهی نیکویی؟ بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من با شما اهمیت قائل نمی بلکه شما واقعا او را تکذیب کردید پس به زودی این مجازات بر شما لازم میگنه